در سرای مغان رفته بود و آب زده نشست پیر و سلاوی به شیخ و شاب زده سبوکشان همه در بندگیش بست کمر ولیز ترک کله چتر بر سحاب زده شعاع جام و قده نور ماه پوشیده ازار مغبچگان راه آفت آب زده عروس بخت آن هجله با هزاران نازد شکسته کسمه و بر برگ گلگلاب زده گرفته ساغر اشرت فرشته رحمت ز جرعه بر رخ حور و پری گلاب زده ز شور و اربده شاهدان شیرین کار شکر شکسته سمن ریخته رباب زده تلام کردم و با من به روی خندان گفت که ای خمار کش مفلس شراب زده که این کند که تو کردی به زعف همت و رای ز گنج خانه شده خیمه بر خراب زده به سال دولت بیدار ترسمت ندهند که خفتهی تو در آغوش بخت خواب زده بیا به میکده حافظ که بر تو عرضه کنم هزار سفز دعاهای مستجاب زده فلک جنیب کش شاق نصرت و دین است یا ببین ملکش دست در رکاب زده خیرت که ملهم قیبه است بحر کسب شرف زبام عشد صدش بوسه بر جناب زده